چادور خاکستری در غروب روزی که اسب شاخدار فراری از در ای ایرل گذشت، آلوریک یازده سال آوارگی کشیده بود، تا ده سال گروه شش نفرشان از پشت خانه ها و برهاش یه دشت هایی که میشناسیم حرکت کردند و هر غروب با پارچه عظیمی که بر روی ستونها میگستراندند، خیمه میزدند. در آن گستره، خیمهشان همواره عجیبترین چیز به نظر میرسید شاید چون خیالگونگی این جستجوی غریب جوهر خود را در تمامی اشیای پیرامون خود باز میتاباند، شاید هم نه، و همچنان که غروب در پیرامونشان خاکستری می حالت خیالانگیز و رمزالودشان بیشتر خود را می نموند، و رغم اشتیاق آتشین آلوریک با آسودگی و تنبلی پیش می رفتند. گاهی در یک منزلگاه دلپذیر سه روز می ماندند و سپس پرس زنان به راه می افتادند. نه یا ده مایل راه می رفتند و دوباره خیمه می زدند آلوریک در درون قلبش یقین داشت که روزی به مرز شفق خواهند رسید یک روز به درون سرزمین پریان خواهند رفت و می دانست که زمان در سرزمین پریان همچون اینجا نیست لیرازل را در سرزمین پریان پیر نشده می آفت بدون آن که هیچ کدام از لبخندهایش در آن سال‌های خروشان گم شده باشد بدون آنکه هیچ کدام از چین‌های چهره‌اش در ویرانگی زمان چروکیده باشد این امیدش بود و همین امید گروه عجیبش را از خیمه‌گاهی به خیمه‌گاه دیگر رهنمون می‌شد و در غروبهای خلوت در کنار آتش شادشان می‌کرد پشت به دیگران بر حاشیه دشت‌هایی که میشناسیم حرکت می‌کردند بی آنکه دیده شود همین امید آنها را به دور دستهای شمال می برد. تنها ذهن واند از امید آنان به دور بود و هر سال منطقش بیشتر و بیشتر افسون هدایتگر دیگران را انکار می کرد و سرانجام یک روز ایمانش را به سرزمین پریان از دست داد. پس از آن تنها تا روزی به دنبال آنها رفت که باد سرشار از باران شد و همه خیس و سرد و عصب فرسوده شده بودند و سپس ترکشان کرد. وارانوک که در قلبش آرزویی نداشت، از رنج گریخته بود. تا روزی به دنبال آنها رفت که تو در دشتهایی هایی که میشناسیم در میان درختان آواز میخواندند. و آن روز ناامیدیش در زیر آفتاب رخشان ترکش کرد و بار دیگر به ها و خانه های انسانها اندیشید. و کمی بعد یک روز غروب او هم از خیمه بیرون رفت و به سوی سرزمین دلپذیرش حرکت کرد و چهار نفری که باقی ماندند همه بر یک اندیشه بودند و غروب ها در زیر پارچه مرتوبی که بر روی ساتون ها گسترانده بودند برایشان سرشار از خوشنودی جرفی بود چون آلوریک با همان نیرویی که سالها قبل پیشینیانش در جنگل‌های های کوهن ارل به آورده بودند و قرن‌ها در اختیار خود نگاه داشته بودند به امیدش چنگ انداخته بود و این ایمان همچون گلی نادر که ممکن است باغبانی به طور تصادفی در مکانی وحشی و مراقبت نشده بکارد در ذهن آسوده نیو و زنت رشد کرد و عظیم و نیرومند شد و تیل درباره آن امید میسرود و تمامی رؤیاهای وحشی که از این پس به سراغش می‌آمدند با درخششی بیشتر و بیشتر از جستجوی آلوریک میخواندند. بنابراین همه بر یک اندیشه بودند و در چونین فضایی جستجوهای دیوانوار یا آقلانه بزرگتری به نتیجه رسیدند و جستجوهای بزرگتری که چونی نبودند شکست خوردند سالها از پشت آن ها به سوی شمال رفته بودند و هنگامی که نشانهی ویژه در آسمان یا اندکی رمز و راز در غروب یا تنها پیشگوی نیو احتمال نزدیک بودن سرزمین پریان را مطرح میکرد به سوی شرق برمیگشتند. و در این موارد نادر، بر فراز صخره هایی که در تمام آن سالها مرز دشت که میشناسیم را تشکیل میدادند چندان پیش میرفتند که آلبیک متوجه میشد آزوقهشان برای خودشان و اسب دشوار میتواند آنها را به خانه های انسانها بازگرداند در این هنگام دوباره باز میگشت اما همچنان نیو بر روی صخره راهنماییشان میکرد چون هرچه چه پیش میرفتند شور و شوقش بیشتر میشد. و تیل برایشان آواز میخواند و موفقیت را پیشگویی میکرد. و زنت می گفت که چکدها و برچهای سرزمین پریان را میبیند. تنها آلوریک عاقل بود. و بنابراین به خانه های انسانها باز می گشتند و باز آزوق تهیه می کردند. و نیو و زند و تیل درباره این جستجو راجی می کردند و اشتیاقی را که در قلب هاشان میسوخت بیرون میریختند اما آلبریک درباره آن چیزی نمی گفت. چون فهمیده بود که در آن دشتها مردم نه صحبت می کنند و نه به سوی سرزمین پریان میگرند هر نفهمیده بود چرا؟ کمی بعد دوباره به راه میافتادند و مردمی که کالاهای دشتهایی که میشناسیم را به آنها فروخته بودند با کنجکاوی به رفتنشان مینگریستند گویی می, گوی می تمام آنچه از نیو و زن دو تیل شنیدهاند، از دیوانگی یا رؤیاهای الهام شده از ماه می آید بدین ترتیب همواره سفر میکردند همواره نقاط جدیدی را میجستند تا از آنجا سرزمین پریان را کشف کنند و عطر دشت هایی که می‌شناسیم از سمت چپشان می‌آمد عطر زنبق از باغ‌های بهاری و سپس عطر گل‌های سفید و سپس عطر گل‌های سرخ می‌آمد تا آنجا که هوا از بوی یونجه تازه درو شده سنگین میشد. بعضع گله ها را در سمت چپشان میشنیدند صدای انسان ها را میشنیدند صدای کپ ها را میشنیدند. همه ی برخاسته های از کشظهای شاد را میشنیدند. و در سمت راستشان همواره همان سرزمین متروک بود، همواره همان سخرها و هرگز سبز گلی دیده نمیشد. دیگر همراهی انسانها را نداشتند، و اما نمی توانستند سرزمین پریان را بیابند در چنین موردی به ترانه های تیل و امید قطعی نیو نیاز داشتند و ماجرای جستجوی آلوریک در سر سر سرزمین پیچید و از آنها پیشی گرفت تا جایی که تمامی آدم هایی که از کنارشان می داستانشان را می دانستند. و از جانب برخی تحقیر می شد همان گونه که برخی از مردم، آنانی را که تمامی زندگیشان را وقف یک جستجو می کنند، تحقیر می کنند و از جانب برخی دیگر ستوده می شد اما تمام آنچه آلوریک از آنها می خواست بود و آن را هم می خرید به ترتیب پیش می همچون موجودات افسانهای از پشت خانه ها می و در غروبهای خاکستری خیمه های بیشکل خاکستریشان را برپا می کردند به خاموشی باران می آمدند و همچون مهی محف شونده می رفتند درباره آنها هم ترانه هایی ساخته شده بود و هم لطیفه هایی و عمر ترانه ها بیشتر از لطیفه ها بود سرانجام به افسانهای تبدیل شدند که برای همیشه در دشت ها باقی ماند هنگامی که مردم از جستجوهای ناامیدانه سخن می گفتند با خنده یا شکوه از آنان یاد می کردند. هر کدام که لازم بود؟ و در تمام این مدت شاه پریان تماشا می کرد چون با جادو میدانست شمشیر الوریک چه نزدیک می شود؟ این شمشیر یک بار قلم را به دردسر انداخته بود و شاه پریان بوی فلز آزرخشین را هنگامی که در هوا متجلی می شد خوب می شناخت برای همین مرزهایش را به دور دستها عقب کشیده بود؟ و سر تا سر آن سرزمین ای خالی شده از سرزمین پریان را به جایی گذاشته بود و هرچند نمیدانست انسان تا چه اندازه می تواند سفر کند فاصلهی باقی گذاشته بود که گذر از آن مسافرین را از پای در می‌آورد و به حق خود را در امان می‌دانست. اما هنگامی که آلوریت با شمشیرش در دور شمال بود شاه پریان چنگالی را که با آن سرزمین پریان را عقب کشیده بود رها کرد همچون ماه که به هنگام جزر آب را عقب می کشد و سپس رهایش می کند تا به جای خود بازگردد و سرزمین پریان همچون مد بر ماسه های صاف برگشت با نوار بلندی از شفق در لبه هایش لغزان بر روی هامون سخره بازگشت و با ترانه های کهن بازگشت با رؤیاهای کهان و با آواهای كهن و در یک دم مرز شفق، درخشان و تابان بر نزدیکی دشتهایی که میشناسیم لمید همچون یک شامگاه بیپایان تابستانی که از عصر زرین باقی مانده باشد اما در دور دستهای شمال که آلوریک سرگردان بود سرزمین متروک همچنان پوشیده از سخراهای بیپایان بود مرزهای شگرف سرزمین پریان همچون یک خلیج فقط به هایی بازگشته بود که آلبریک و گروه ماجراجویش از آنها رفته بودند. بنابراین این سرزمینی که با شگفتی رفته بود که شاعران به سختی درک می‌کنند، همان گنجینه تمامی اسرار خیالانگیز اکنون سه دشت آن سوتر از کل به یک چرم سارهای همسایگانش لمیده بود. و کوه سرزمین پریان جرف به مرز خیره شده بودند. گویی چکات آبی روشنشان هرگز جابجا جا نشده بود. و اسب شاخدار در مرز سرزمین پریان مشغول چرا بود؟ این رسم اسبهای شاخدار است. گاهی در سرزمین پریان خودشان میچرند و زنبقه های رویده در سراشیب های را میخورند، گاهی به هنگام غروب از میان مرز شفق میگذرند تا بر سبزه های زمینی چرا کنند. به خاطر همین هوس خوردن سبزه های زمینی است که گاه به گاه برانان مصطولی می شود، همانگونه که سالی یک بار دیدن دریا گوزن سرخ سرزمین های کوهستانی را فرا میگیرد گیرد، که هرچند در سرزمین پریان به دنیا آمده اند و افسانه ای هستند، اما هستی آنها در میان انسانها کمتر شناخته شده نیست. روبا هم که در دشتهای ما به دنیا آمده در فصلهای ویژه ای از مرز میگذرد و به میان شفق میرود از آنجاست که آن تجلی خیال خیالانگیز را با خود به دشتهای ما میآورد، او هم افسانه است، اما تنها در سرزمین پریان همان گونه که اسب شاخدار در اینجا افسانه است. و مردم آن کشتزارها از پای شاخدار را حتی در آن تیرگی تار به ندرت می دیدند چون برای ابد از سرزمین پریان روی گردانده بودند. شگفتی، زیبایی، درخشش و داستان سرزمین پریان برای آنانی بود که آرامشان در اهمیت دادن به چنین چیزهایی است اما محصولها و جانوران غیر افثانه و کاه گل و پرچین ها و هزاران چیز دیگر نیازمند مردان کش بودند این مردان در پایان هر سال به سختی بازمستان نبرد می کردند. آنها خوب می‌دانستند که اگر اندیشهشان تنها یک دم به سرزمین پریان رو کند شکوهش خیلی زود آنها را در چنگ خواهد گرفت و آسایششان را خواهد ربود بود و دیگر هیچ زمانی برای تعمیر کلبه یا پرچین یا شخم زدن دشتهایی که میشناسیم نخواهد ماند اما اوریون با صدای شیپورهایی که به هنگام غروب در سرزمین پریان نواخته میشدند فراخوانده شد و گونهای هماهنگی گوشهایش با چیزهای جادویی سبب میشد که تنها او در تمام آن دشتها آن صدا را بشنود و با سکهایش به دشتی آمد که مرز شفق از آن میگذشت. حتیر هنگام غروب، اسب شاخدار را در آنجا یافت. و در حالی که با سکهایش بر لبه آن دشت کوچک می خزید، بین اسب شاخدار و مرز قرار گرفت و راهش را به سوی سرزمین پریان سد کرد. این همان اسب شاخداری بود که با گردنی درخشان و پوشیده از رگه های کفالودی، که در زیر نور ستارگان درخششی نقرهی داشتند نفس زنان از پا افتاده و خسته همچون یک الهام همچون سلسل ای جدید بر سرزمینی خسته از رسوم همچون رسیدن خبر پدیدار شدن قار رئیشات تر از دور برای مردمان دریاگرد به دره ایرل آمد سفر به دنیای پر رمز و